زمین. تا جایی که می دانیم این سیاره تنها خانه حیات در کیهان به شما می آید اما چرا؟ چه چیز باعث شده سیاره ما تا این حد ویژه باشد؟ پاسخا در گذشته که دور زمین پنهان است برای یافتن آنها باید به عقب بازگردیم باید شاهد قدم گذاشتن اولین انسانها روی زمین باشیم قرار گرفتن قاره ها را در مسیر برخورد ببینیم با دایناسور های قاتل روبرو شویم و اماق اقیانوس های پر از گونه های عجیب حیات برویم سرمایه شدید اصحای یخبندان جهانی را احساس کنیم و تجربه ای دست اول از خشم حمله های شحابسنگی کیهانی داشته باشیم باید به گذشته بازگردیم تا به زمان تولد خود زمین برسیم تنها پس از آن است که می توانیم داستان شگفت انگیز سیاره یمان را درک کنیم و دریابیم چرا همه اینها چرا همه ما اینجا هستیم سفر ما تقریباً پنج میلیارد سال پیش آغاز می شود اما حتماً اشتباهی پیش آمده هیچ اثری از سیاره آبی زیبای ما مشاهده نمی شود اینجا تنها یک ستاری تازه متولد شده وجود دارد خرشید ما با این هجب از قبار پیرامونش پیش از حد اقب رفته ایم به زمانی حتی پیش از پیدایش زمین اگر جلوتر برویم می توانیم شاهد تشکیل سنگ هایی کوچک در نتیجه تأثیر نیروهای جازبه بر روی قبار باشیم بسیار دور از ذهن به نظر می رسد که چیزی به پیچیدگی یک سیاره تنها از قبار و سنگ ساخته شده باشد نیروی جازبه تنها میلیون ها سال زمان این سنگ ها را کنار هم قرار داده و زمین را به وجود آورده یکی از حد اقل صد سیاره در حال چرخش به دور خرشید اما چهار میلیارد و پاندصد و چهل میلیون سال پیش سیاره ما بیشتر به جهنم شباحت داشت تا خانه. دمای سیاره بیش از هزار و دیویس درجه سلسیوس است. هوایی وجود ندارد. تنها اناثار موجود دیوکسید کربان، نیتروجن و بخار آب است. فضا به قدری داغ و سمیز که در صورت نزدیک تر شدن تنها تیه چند ثانیه دوچار خفگی و تبدیل به خاک سر خواهی می شد این سیاره تازه متولد شده توپی در حال جوشیدن از سنگ مایه است تقریبا هیچ سطح جامدی روی سیاره وجود ندارد و تنها اوقیانوسی بی پایان از گدازه قابل مشاهده است صياره جوان به نام تاء مستقيم به سمت ما در حرکت است. این سياره ابعادی معادل مریخ داشته و با سرعتی در حدود 15 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند که این یعنی سرعتی بیش از 20 برابر یک گلوله نیروی جازبه این میهمان ناخانده شکل طبیعی سطح زمین را دست خوش تغیید کرده موج انفجار به سرعت در سر تا سر سیاره پخش می شود. به نظر می رسد هر دوی این سیاره های جوان به مایه تبدیل شده باشند. تریلیون ها تون بقایی های حاصل از برخورد در فضا پخش می شود، اما عمل کرده جادوی نیروی جازبه تنها تیه هزار سال خورده سنگها را به حلقه از قبار و سنگهای قرمز دا تبدیل می کند که فضای پیرامونی زمین را دربر می گیرد و حالا از دل این حلقه گوئی پهنای بیش از سه هزار کلومتر به وجود می آید و ما اکنون شاهد تولد سیاره ماه هستیم این ماه خیلی نزید تر از ماهیست که ما می شناسیم و به جای 400 هزار کلومتر تنها 22 هزار کلومتر با زمین فاصله دارد سرشید بر فراز زمینی در حال سر چدن بالا می آید و تنها سه ساعت پس از طلو قروب می کند سرعت گردش زمین در نتیجه برخورد به قدری افضایش پیدا کرده که یک روز کامل تنها تیه شش ساعت به پایان می رسد گرچه روزها به سرعت سپری می شود اما تغییرات زمین بسیار کند است. برای درک چگونگی پیدایش سیاره ما باید میلیون ها سال جلو برویم. بارش شهاب واره ها سه و نه میلیارد سال پیش اکنون تحت حمله بقای های حاصل از تشکیل منظومه شمسی قرار داریم به این کریستال های عجیب داخل شهاباره ها دقت کنید ظاهری شبیه به نمک دارند همان نمکی که روی سیبزمینی سرخ شده می پاشید داخل این ها قطرات کوچکی از آب هم وجود دارد به نظر می رسد این موشک های مرگبار حامل انصار کلیدی پیدایش حیات روی زمین باشند این ها مقدار بسیار کمی آب داخل هر شهاب باره وجود دارد اما بمباران زمین توسط آنها تیه مدت بیش از بیست میلیون سال ایجاد حجم قابل توجهی از آب را در پی دارد آب روی سطح زمین جامع جمع می شود هسته ی زمین به صورت مضاب باقی مانده اما دمای سطح آن به هفتاد تا هشتاد درجه رسیده که برای تشکیل یک پوسته کافی است این ها مقدار بسیار کمی آب داخل هر شه ما بعدها از همین آب به عنوان نوشیدنی استفاده خواهیم کرد هر برکه، هر گودال و هر قطر از آب موجود در همه اوگیانوس ها میلیارت ها سال قدمت دارد و ممکن است میلیون ها کلومتر مسیر را داخل یک شهاب باره برای رسیدن به ما تهی کرده باشد زمین حالا چهره آشناتری پیدا کرده اما اینجا هنوز هم سیارهی خطرناک است سرعت وزش باد معادل یا حتی بیشتر از ویرانگرترین طوفان‌ها است. این طوفان شدید است که در نتیجه چرخش سریع سیاره تشدید شده. نزدیکی ماه به زمین تا این حد باعث شده تأثیر نیروی جاذبه‌اش بسیار شدید باشد. جازب موجهای بسیار بزرگ در سر تا سر سیاره ایجاد می کند اما در گذر زمان ماه دورتر، امواج آرامتر و سرعت چرخش سیاره کمتر می شود. 700 میلیون سال پس از پیدایش سیاره آب حیات بخش سطح زمین را پوشش داده. البته نه تنها آب. چیز دیگری همون پایین وجود دارد جزایر کوچک به نظر می رسد این جزایر از هیچ به وجود آمده باشند اما سنگ گداخته پوستگ زمین را شکافته و از دل اغیانوس بیرون می آید گدازه ها در گذر زمان سَر شده و جزیره ای آتش فشانی به وجود می آورند. این جزایر این گونه شکل گرفتند. آنها بت ها به یکدیگر پیوسته و اولین قاره ها را به وجود می آورند. زمین جوان حالا آب و خشکی دارد. اینجا کم کم به همان سیاره ای تبدیل می شود که ما به عنوان خانه می شناسیم اما اتماسفر هنوز سمی و دما هم بسیار بالاست هیچ موجودی نمی توالد اینجا زندگی کند شهابواره ها بارش این اکسام از همان زمان پیدایش سیاره ادامه داشته اما حالا 3 و 8 میلیار سال پیش این بارش ها شدت بیشتری گرفته آملی باعث تغییر مدار این شهاباره ها شده شهاباره ها تا اینجا آب را به زمین آوردند اما حالا حامل چیز دیگری هم هستند شهاباره ها پس از زوب شدن مواد معدنی موجود در خود را آزاد کرده و کربون و پروتوین های اولیه یعنی اسید های آمینه را از فضا به کف و اقیانوس ها منتقل می کند محیط تاریک است پرسه های خرشید نمی تواند بیش از سی ست متر نفوز کند و دما هم به شدت پایین است این باید یک سراب باشد شهری از دودکش های زیر آب اما آنچه بیرون می آید ندود بلکه نوعی مایه داغ است آب دریا از طریق شکاف های موجود در پوسته زمین پایین رفته داغتر شده و مواد معدنی و گازها را با خود همراه می کند همین ترکیب قدرتمند است که با فشار به اقیانوس بازگشته و این برچها را به وجود آورده است با افزود شدن مواد معدنی و شیمیائی حاصل از سقوط شهاباره ها به این ترکیب آب تبدیل به سوپی شیمیائی شده یقین آگاهی از چگونگی یا زمان وقوع این اتفاق غیر ممکن است اما این مواد شیمیایی در کنار هم به ترتیبی عامل پیدایش حیات شدند آب اکنون پر از ارگانیسم های میکروسکوپی است این باکتری های تک سلولی نخوسین شکل های حیات در زمین به شمار می آیند و این لحظه ای تعین کننده در پیدایش زمین است حیات در عباد میکروسکوپی به وجود آمده اما سپس تیه ست ها میلیون سال بعدی هیچ چیز تغییر نمی کند نه پیشرفتی ایجاد شده و نه گامی تکاملی رو به جلو برداشته می شند تنها موجودات زنده همین باکتری های تکسلولی هستند برای پیدا کردن گونه های پیشده تر حیات باید جلوتر رفته و به سه و نیم میلیارد سال پیش و به اقیانوسی کم اوم برسیم این ها شبیه به سنگ یا حتی گیاه هستند. به نظر می رسد از کف دریا روشت کرده باشند. هر یک از این ها کوه سانی از باکتری های زنده هستند. یک کلونی به نام سروماتولیت، این باکتری ها به شکلی جادوی نور خرشید را به قضا تبدیل می کند این فرایند که با عنوان فوتوسنتز شناخته می شود از نیروی خرشید برای تبدیل دیوکسید کربون و آب به گلوکوز استفاده می کند شکلی ساده از قند شبیه به همان چیزی که اکنون در قهوه من استفاده می کنیم اما این تبدیل جادویی باعث آزاد شدن یک محصول جانبی هم می شود، گازی به نام اکسیژن. استروماتولیت ها به آرامی اوگیانوس ها را با اکسیژن پر می کند. آزاد شدن اکسیژن باعث زنگ زدن آهن موجود در آب می شود، این زنگار ها به کف اقیانوس رفته و مخازنی از سنگ های قنی از آهن را ایجاد می کنند. ما بعد ها از این کانی ها برای ساخت پل ها، کشتی ها و آسمان خراش ها استفاده خواهیم کرد. در بالای انواج آزاد شدن اکسیجن، اتماسفر را دگرگون می کند این استروماتولیت ها در حال ایجاد مهمترین انصار حیات در زمین هستند بدون وجود آنها پیدایش هیچ گونه دیگری از حیات ممکن نمی بود هر دم و بازدم ما مدیون وجود این کلونی های باکتریای باستانی است ستوه اکسیجن تا یه دو میلیار سال بعدی افضایش پیدا می کند و با کاهش سرعت چرخش سیاره روزها طولانی تر می شود یک روز حالا حد دقل شانزده ساعت است همینطور که می بینیم پیدایش یک سیاره مدتی بسیار طولانی زمان می برد یک و نیم میلیارد سال پیش یعنی سه میلیارد سال پس از تولد زمین هنوز هیچ گونه پیچیدگی حیات، هیچ گیاه، دایناسور و انسانی وجود ندارد اما زمین چیزی دارد که هیچ سیاره دیگری از وجودش برخوردار نیست نیروی با قدرت تغییر همه چیز سیاره ما یک گوی آبی رنگ زیبا پر از جزاگر آتش فشانی سیارهی که یک و نیم میلیار سال پیش خانه گونه این نخستین از حیات هست با گذشت میلیون ها سال زمان می توانیم ببینیم که چیزی در حال تغییر آرایش جزایر هست پایین اوگیانوس، پوسته زمین به صفحاتی گسترده تقسیم شده پایینتر، هستیگ زمین در حال کار است اینجا از پوسته خرشید هم داختر است دما به قدری بالاست که باعث جا به جایی ستوهی سنگی زیر پوسته می شود این جا به جایی ها باعث کشیدن و هول دادن صفحات در سر تا سر دنیا و جا به جایی اقیانوس ها و جزیره ها همراه آنها می شود میلیون ها سال سپری می شود مشاهده که این سحنه ها به این ترسی باعث می شود سیاره ما فعال پیوسته در حال تغییر و زنده به نظر برسد تیه مدت چهارصد میلیون سال یک عبرقاره بسیار بزرگ به نام رودینیا شکل می گیرد استروماتولیت ها به مدت بیش از دو میلیارد سال در آبهای کم اونغ پیرامون رودینیا عمل کرده جادوی خود را ادامه داده و اکسیژن را در فضا آزاد کردند دمای هوا سی درجه است و طول روزها به هشته ساعت رسیده اما اینجا بیشتر به مریخ شباهت دارد تا زمین برای یافتن حیات در اینجا باید در زمان جلوتر برویم ایالت واشنگتن 750 میلیون سال پیش نیرویی از اعماق خود سیاره در حال چن تک کردن پوسته است طوری که انگار دنیا در حال از هم پاشیدن باشد و تنها یک نیرو از چنین قدرتی برخوردار است گرما گرمایی که از هسته گداخته زمین فرار کرده تاب به پوسته فشار می آورد و ساختارش را ضعیف می‌کند. سانتی‌متر به سانتی‌متر و سال به سال این ابر قاره بزرگ در حال دونیم شدن است. این فعالیت شدید زمین شناختی پیدایش تعداد زیادی آتش فشان را در پی دارد این آتش فشان ها دیوکسید کربون را در هوا آزاد می کنند دود و گاز همه جا را فرا گرفته دی اکسید کربن فراوان موجود با آب ترکیب شده و باران اسیدی را به وجود آورده سنگ ها باران اسیدی و دی اکسید کربن آن را جذب می‌کنند با دونیم شدن قاره حالا تعداد بسیار زیادی سطح سنگی در زمین ایجاد شده این تعداد به قدری بالاست که میزان قابل توجه دی اکسید کربن موجود از هوا جزب شده و در سنگهای زمین گرفتار می شود حالا دیوکسید کربون کافی جهت نگه داشتن گرمای خرشید پیرامون سیاره در هوا وجود ندارد تنها تا یه چند هزار سال دمای هوا تا حدود منهای پنجاه درجه پایین می آید. این زمین بایر یخزده جنوب استرالیا است، ششتد و پنجاه میلیون سال پیش دوران شروع آنچه از سوی برخی از دانشمندان با عنوان زمین گوی برفی شناخته می شود دورهی که به اعتقاد آنها طولانی ترین و سر ترین عصر یخبندان در تمام طول تاریخ این سیاره بوده دیوارهی گسترده از یخ با هزاران متر ارتفاع یخبندان متوقف نمی شود با افضایش ستوه یخی نور خرشید به میزان بیشتری به بیرون از سیاره با ساب داده شده و در نتیجه یخوندان گسترش پیدا می کند و یک دیواره یخی دیگر با همان اندازه ارتفاع دو دیواره در جهت مخالف دو قطب به سمت یک دیگر کشیده شده و در اصطواب به یک دیگر می رسند حالا دیواره ای از یخ با ذخامت حد اکثر 3 کلومتر همه سیاره را در بر گرفته زمین در ابتدا گوی آتشین از گدازه بود و حالا به گوی منجمه از یخ تبدیل شده اکنون همه پرتوها و گرمای خرشید به فضا باستاب پیدا می کند به نظر می رسد حالا هیچ چیز حتی خرشید هم نتواند سیاره ما را نجات دهد زمین تبدیل به یک گوی برفی بسیار بزرگ شده 635 میلیون سال پیش ستوه یخ همه سیاره ما را به مدت 15 میلیون سال در بر گرفت اما این شرایط نمیتواند همیشگی باشد چیزی باید زمین را از این زندان یخی آزاد کند و پس از وقوع این اتفاق شاید بتوانیم شاهد بقای حیات زیر این سطوح یخی باشیم سطح زمین یخ زده اما هسته زمین هنوز هم از سطح خورشید داغ تر است آتش فشان ها از همان زمان شروع عصر یخبندان فعال هستند اما گرما و نیرویشان تا به حال هیچ تأثیری روی سطوح یخی نداشته آتش فشان ها میلیارد ها تون دیوکسید کربون در فضا پخش می کنند پیش از یخبندان بزرگ سنگ های زمین بخش اعظم این دیوکسید کربون را جزب کردند اما حالا با پوشیده شدن سنگ ها با یخ، چیزی برای جذب این گاز ها وجود ندارد. بنابراین، اتمسفر پر از دیوکسید کربون می شود. این گاز مثل یک پتو گرمای خرشید را پیرامون زمین نگه می دارد. دما شروع به بالا رفتن کرده و پس از پانزده سال یخ ها شروع به آب شدن می کند. تصور می شود طی دوران زمین گوی برفی سطوح یخی پوسته زمین را به پایین رانده و حالا با آب شدن یخ ها پوسته دوباره بالا می آید این فرایند ایجاد شکاف ها و نقاط سست و آتش فشان های بیشتر و بیشتر را در پی دارد این آتش فشان ها هم به نوبه خود دیوکسید کربون بیشتری آزاد کرده و دمار را حتی بالاتر می برند فرایند آب شدن یخ ها سریتر می شود سطح اکسیژن افضایش پیدا می کند یخ در نتیجه مجموعه از واکنش های شیمیایی اکسیژن ایجاد کرده در حالی که سیاره یخ زده بود پرساهای فرابنفش خورشید با مولکولهای آب موجود در یخ واکنش شیمیایی داشته و ترکیبی غنی از اکسیژن را آزاد کردند. پراکسید هیدروژن همان ماده ای که برای روشن کردن رنگ مو از آن استفاده می شود. حالا همزمان با آب شدن یخ ها پراکسید هیدروژن هم تجزیه شده و مقادیر قابل توجهی اکسیژن را آزاد می کند. زمین در حال بیدار شدن است و حالا به مکانی کاملا متفاوت تبدیل شده اکنون 600 میلیون سال پیش هوا گرم‌تر شده و به یک روز تابستانی شباهت پیدا کرده. طول روزها به حدود 22 ساعت رسیده. با وجود این میزان آب، شرایط کاملاً برای حیات آماده است. پیش از دوران زمین گوی برفی، باکتری های نخستین در اوگیانوس ها به وجود آمده بودند. اما احتمالاً بقایشان پس از عصر یخبندانی 75 برابر طولانی تر از همه تاریخ بشر ممکن نیست. اگر چیزی از حیات باقی مانده باشد، باید آن را همان جایی که آخرین بار مشاهده کردیم، جستجو کنیم در اوگیانوس. حالا به پانصد و چهل میلیون سال قبل رسیده ایم این باکسری های نخستین در اوگیانوسی سرشار از اکسیجن تکامل پیدا کردند تعدادی از آنها موفق به پشت سرگذاشتن اصر یخبندان شدند گیاهان همه جا به چشم میخورند البته در کنار گونهی دیگر چیزی شبیه به یک حل از اون نام این موجود خنجر پشت است و یکی از اولین نسل ها از ارگانیزم های پیچیدگه چند سلولی به شمار می آید ما در حال ورود به یکی از پویاترین دوره ها در تاریخ زمین هستیم دوره انفجار کمبرین افضایش سطح اکسیجن رشد بیشتر و تشکیل ساختارهای استخانی را برای جانداران ممکن کرده کرم ها اسفنچ ها و این موجودات تیرلوبیت ها بستگان دور هشرات، خرچنگ ها و حتی اقرب ها به شمار می آیند زندگی در اقیانوس در حال شکوفا شدن است از باکتری های میکروسکوپی گرفته تا حیوله هایی مثل این این یک ناجور میگوه است حدود 60 سانتیمتر درازه دارد به چشم های بزرگش دقت کنید همینطور به دندان های فوقلاده تیز و اندام های گیرنده اش تنها کاری که ناجور میگو باید انجام دهد انتخاب شکار خود است تری لوبیت گرفتار شده شکم نرم او کاملا در دسترس قرار گرفته این ها پیکایا هستند تنها حدود 5 سانتی متر رازا دارند اما عاص ساختاری برخورد دارند که ممکن است اولین نمونه از ستون فقرات باشد این ساختار کوچک تا میلیون ها سال بعد تبدیل به ستون فقراتی خواهد شد که ما را سرپا نگه می‌دارد ما انتظار داشتیم پس از بررسی اقیانوز تنها با بازمانده هایی محدود از حیات روبرو شویم اما در عوض به دنیایی سرشار از زندگی گام گذاشتیم دنیایی که در آن تریلوبیت ها در جستجوی قضا هستن و حیوله ها به دنبال شکار و جانداران کم کم شکل هایی آشنا به خود می گیرد زیر انواج اوغیانوس ده ها هزار گناه های گیاهی و حیوانی وجود دارد. به نظر میرسد پیشرفت حیات غیر قابل توقف است. حالا به دنبال حیات در خشکی هستیم. به 460 میلیون سال پیش رسیده این و صفحات زمین دوباره جا به جا شدند، قاره جدید تشکیل شده گندوانا هوا گرم شده و دما به سی درجه رسیده و ستوه اکسیجن نزدیک به شرایط فعلی زندگی ماست اما اینجا چیز زیادی وجود ندارد جز ستوهی از جلبک تنها یک توضیح وجود دارد خرشید خرشید پرتوهای مرگباری را به سطح زمین می فرستد حیات پیشیدهی که در اوگیانوس مشاهده کردیم، هیچ شانسی برای بقا در سطح زمین ندارد. اما پنجاه کلومتر بالاتر، جایی که پرتوها وارد اتمسفر زمین می شوند، رخدادی عجیب در حال وقوع است. اکسیجن در نتیجه که برخورد با پرتوهای خرشید به نوعی دیگر از گاز تبدیل می شود، گازی به نام ازون. این گاز پوششی را پیرامون سیاره به وجود می آورد این لایه از اوزون پرتوهای مرگبار خرشید را جز می کند لایه های اوزون تقیه 120 سال بعدی قطر بیشتری پیدا کرده و از رسیدن بخش های بیشتر و بیشتری از پرتوها به سطح زمین جلو گیری می کند بدون وجود این لایه امکان پیدایش حیات در سطح زمین وجود نمی داشت حالا با در امان ماندن سطح زمین از پرسه های مرگ بار خرشید حیات شکوفا می شود این ستوه خزمانند اولین گیاهان خوشگیزی هستند و اکسیژن بیشتری را در هوا آزاد می کنند سطح اکسیژن افضایش قابل توجهی پیدا می کند سی سد و هفتاد و پنج میلیون سال پیش اینجا چیزی هست موجودی داخل آب که جا به جا می شود و شنا می کند یک ماهی عجیب به نام تیک تالیک یک ماهی عجیب به نام تیک تالیک داختار گردن اون امکان بالا کشیدن بدنش را فراهم می کند این ماهی از باله هایش مثل پا استفاده می کند ماهی از آب بیرون آمده وارد فضایی سرشار از گناه های گیاهی می شود تا یه مدت بیش از پانزده میلیون سال این جانداران که به نام چهار اندامان شناخته می شوند تکامل پیدا می کنند اندامهایشان قوی تر می شود و مدت زمان بیشتری را بیرون از آب سپری می کنند تا این که بلاخره سی سد و شست میلیون سال پیش خشکی تبدیل به خانهشان می شود همه ی مهرداران از جمعه دایناسور ها، پرندگان، پستانداران و در نهایت من و شما حاصل تکامل چنین موجودی هستیم. انباع خزه ها و سرخص ها برخی حتی با سی میتر ارتفاع همه جا را دربر گرفتند، این یک بزر است که توسط باد جا به جا می شود گیاهان تا به حال با استفاده از حاک تولیده می اسمی کردن زراتی تکسلولی که جهت بقا و رشت به میزان زیادی آب نیاز دارند اما این بزر کیلومترها با آب فاصله دارد این گیاه جوان از زخایر آب و قضای خود برخوردار است این بحث برخلاف یک هاگ می تواند ماها و حتی سالها دور از آب زنده بماند. چنین بحث هایی باعث گسترش حیات در این سیاره می شوند. و همه این درختان و گیاهان اکسیجن بیشتری را تولید می کنند. و حالا ما می توانیم اینجا بایستیم و نفس بکشیم. می توانیم با همین شرایط همینجا زندگی کنیم. تا اینجا مسیری طولانی را طی کرده ایم از توده‌های از سنگ و غبار سوزان تا سیاره ای به رنگ آبی و سبز. سرشار از زندگی هنوز هم خبری از انسان ها نیست اما ماهی ها گیاهان و این موجودات را داریم یک آسیابک البته آسیابکی به اندازه یک اوقا این جاندار قولپکر مگانیو را نام دارد آنچه زمانی پا بوده حالا به بال تبدیل شده و پوشش منطقی شکار آسیابک را به میزان قابل توجهی گسترش داده اینجا هزار پا انکبوت و انواع هشرات دیگر را هم داری این جانداران که با نام بندس پایان شناخته می شوند در زمره اولین موجوداتی بودند که به خشکی پا گذاشتند آنها تا همین الان از بیشینه 100 میلیون ساله برخورددار هستند و ظاهری تقریبا مشابه با همان حشرات خانگی امروز ما دارند البته جز یک تفاوت بزرگ آنها هم مثل مگانیورا قولپکر هستند ما به دنیای گمشده از موجودات قولپکر پا گذاشتیم دنیایی با هزار پاهای 2 متری و عقرب‌هایی به اندازه یک گورگ سطح بالای اکسیژن موجود در اتمسفر باعث شده سیستم تنفس آنها بهینه تر شده و فضاقی بیشتری برای رشد انزام هایشان فراهم شدد موجودی مارمولک شکل به نام جنگل آشیان جاندارانی که تا اینجا دیده ایم در آب توخ گذاری می کردند اما این تخم ها حاوی همه آب و مواد مغذی مورد نیاز جنگل آشیانهای در حال رشد است. نوزادان در فضای مخصوص و خودکفای خود رشد می کنند. این تخم یک دستاورد تکاملی بزرگ به شما می آورد. حالا هیوانات می توانند آب را رها کرده و زمین را تسخیر کنند این نوزاد جنگل آشیان پیش روی این فرایند تکاملی خواهد بود گونه تازه از جانداران به نام خزندگان اما حضور مرک هم در کنار زندگی اشتناب نپذیر خواهد بود تعدد پوشش های مرده گیاهی به قدریست که در کنار هم دوچار فساد شده و لایه های متراکم و مرتوب را ایجاد می کنند تیه مدت ست ها میلیون سال سنگ ها روی این لایه ها را می پوشانند گرمای هسته زمین و فشار سنگ ها این لایه های گیاهی مرده را به زغال سنگ تبدیل می کند هر تک زغال سنگی که امروز می سوزانیم تا خانه های من را گرم کرده و سوخت نیروگاه های من را تعمیل کنیم از گیاهانی به دست آمده که سی ست میلیون سال پیش مردند اما در میان این تباهی دور از چشم ما زندگی در جریان است بسرها به زودی جوانه می زنند گیاهان روشت می کنن و این زمین بایر بار دیگر سرشار از زندگی خواهد شد به نظر می رسد حیات سیاره را تسخیر کرده است روحی از جانداران مشغول تقضیه در فلات سیبری هستند آنها دایناسور نیستند دایناسور ها تا حد اقل بیست میلیون سال بعد ها به این سیاره نخواهند گذاشت اما این جانداران گولپیکر هستند تکامل گامی بزرگ رو به جلو برداشته مارمولک های کوچکی که پیش از این دیدیم حالا به خزندگانی گولپیکر تبدیل شدند این موجودات اسکوتوسوروس نام دارند بستگان دور لاک پشت ها آنها گیاخار هستند اما اگر گیاخاران این طور بوده باشند تصور کنید موجودات گوشتخار تا چه حد پرخاشگر بودند این یک گرگونوپسید یا زشت سیما هست یک ماشین کشندگی ماغرد تاریخ که به بهترین شکل ترراحی شده دندان های شمشیری زشت سیما اسکوتو سروس را زخمی کرده شکارچی تماشاگر زیفتر شدن شکار در نتیجه از دست دادن خون است تا این که سرف کنید شکارچی در حال قبنشینی است اتفاق عجیب در حال وقوع است زمین داغ شده. باید فشاری فوق‌العاده زیر سطح زمین ایجاد شده باشد. دازه ها را میبینید اما این فقط یک آتش فشان نیست همه ی منطقه در حال فوران است یک بازالت سیلاوی فشاری فوقلاده از اعماق زمین وارد شده و سنگ های گداخته را از طریق شکاف های موجود در پوسته زمین به بیرون سرازیر میکند از طریق شکاف های موجود در پوسته زمین این بهشت شاداب حالا به جهنمی خالی از زندگی تبدیل شده اسکوتوسوروس و از زشت سیما مرده اند آنها اولین تلفات بزرگترین انقراز گسترده در تاریخ جهان به شمار می آیند انقراز پرمیان درون سوی قاره گندوانا گویی هیچ اتفاقی رخ نداده. برف. اما دمای هوا حدود 20 درجه است. ولی این برف نیست، بلکه ریزش خاک سرهای ناشی از انفجارهای رخ داده. در فاصله شانزده هزار کلومتری است خاک سرها حیوانات را در سر تا سر دنیا می سوزاند خفه می کند و می کشد هوا از دیوکسید سودفور حاصل از انفجارها پر شده با بارش باران این گاز تبدیل به اسیتول فوریک شده و هران چرا که در مسیرش قرار می گیرد می سوزاند در ابتدا به نظر می رسید موضوع یک فاجعه محلی باشد اما حالا همه ی دنیا تحت تأثیر قرار گرفته فورانهای رخ داده در سیبری سطح دیوکسید کربون زمین را بالا می برد فضا داغتر می شود آب بخار می شود گناه های گیاهی می میرند تصور می کردیم حیات بلخره روی زمین ریش دوانده باشد اما حالا به نظر می رسد در اشتباه بوده ایم هیچ نشانه ای از زندگی در خشکی به چشم نمی خورد اما در اوگیانوس ها حتما اشتباهی پیش آمده اوگیانوس ها در حال صورتی شدن است و گیاهان، تریلوبیت ها، شکارچیان همه از به این رفتند همه چیز به جز این جلوک های صورتی داختر شدن فضا باید اوگیانوس ها را گرم کرده و اکسیجن موجود در آنها را گرفته باشد حالا هیچ چیز به جز جلبک نمیتواند در این آبهای راکت زنده بماند انفجار های سیبری شرایط سر تا سر زمین را دگرگون کرده هیچ چیز حتی امیغترین ستوه اوگیانوسی هم از تأثیر آنها در امان نخواهد بود نگاه کنید هباب اما این ها نه اکسیژن بلکه متان است که از مخازن گسترده ی گاز متان زیر سطح دریا بیرون می آید متان یک گاز گلخانه ایست که حد اقل بیس برابر مرگ بارتر از دیوکسید کربون به شمار می رود این گاز تا کنون منجمد بوده اما با افضاگش دمای دریا شروع به زوب شدن می کند آزاد شدن این گاز قدسمند در فضا افضایش حتی بیشتر دما را در پی خواهد داشت دما به حدود چهل درجه می رسد شش درجه بیشتر نسبت به پیش از وقوع انفجارها در سیبری حالا حتی از به این رفتن جاندارانی که تا الان دوام آوردند هم حتمیست پانست هزار سال از زمان شروع اولین انفجارها سپری شده و تای تمام این مدت حتی نیم میلیون سال گدازه ها در حال فوران بوده گدازه ها تا کنون فضایی به مساحت ایالت متحده را پوشنده است و لایهی باز خامت حدود شش کلومتر از سنگ های گداخته به وجود آورده است نوید و پنج درصد حیات از بین رفته است تنها تعداد محدودی از جانداران با نقض دادن به زیر زمین و تقضیه از هران چه در دستس هست باقی ماندند اما جز آنها همه چیز مرده دویست و پنجاه سال پیش دوباره به نقطه شروع بازگشتیم به سیاره ای آری از حیات البته تقریباً 50 ملیون سال از زمانی که تقریبا همه ی گونه های حیات از روی زمین پاک شد، سپری شده و سیاره دگرگونی بزرگی را تجربه کرده حالا به 200 ملیون سال پیش رسیده ایم و تنها یک عبرقاره به نام پنجیا وجود دارد که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد پیدا کرده شرایط سیاره پس از تحمل ضربه انقراز گسترده در حال بهبود است دمای هوا رفته رفته پایدارتر می شود بارانهای اسیدی به پایان رسیده و پوشش های گیاهی در حال بازگشت است با توجه به ازمین رفتن 95 درصد حیات در زمین فضا برای رشد گونه ای تازه فراهم شده گونه ای که بیشتر از هر جاندار دیگری تا کنون یاز این پس در سطح سیاره گسترش پیدا خواهد کرد دایناسور ها این دایناسور ها اماسورز نم دارند آنها همچن همه دایناسور ها حاصل تکامل تعداد محدودی از خزندگان هستند که از انقراض پرمیان در امان مانده بودند عباد بزرگ و چهار و نیمه اتقاط باعث شده این جانداران کند و آسی پذیر باشند یک دایلافاسور نه دوتا این دایناسور ها کوچک و سری هستند اموسورس وعده غذایی بسیار بزرگی برای تنها یک دایلافوسور است اما نه برای دو تا دایनासورها بار دیگر زمین را سرشار از حیات کرده اند اما هیچ گونه ای نمی تواند این سیاره بیقرار رو پرجم بجوش را رام کند پوسته زمین در اینجا در حال نازکتر شدن بوده گداز آزاد کرده و دوچار لرزش می شود گوی توسط نیروی پنهان در حال کشیده شدن باشد همین اتفاق در منطقهی که بعدها تبدیل به مرز شرقی دریایی امریکای شمالی خواهد شد هم در حال وقوع است صفحات زمین بار دیگر در حال جا به جاییست 190 میلیون سال پیش عبرقارگ بزرگ پانجی ها تقسیم می شود تکهی بزرگ از خشکی جدا شده شکافی به وجود می آید که با ایجاد اقیانوسی به نام تتیس در منطقهی که بعدها تبدیل به خواهر میانه خواهد شد پر می شود جریان آب مواد مدنی را به آبهای ساحلی جاری در امتداد عربستان سعودی، عراق و ایران آینده می رساند وجود این مواد مدنی باعث جذب میلیون ها ماهی می شود این مواد مدنی باعث جذب میلیون ها ماهی می شود وجود این میزان زندگی مرگ را هم همراه خود دارد ماهی های مرده و پلنگتون ها کف اقیانوس را پوشش می دهند تقیه ده میلیون سال بعدی لایه هایی از سنگ روی این جانداران مرده را پوشنده و گرمشان می کند ماهی ها و پلنگتون های باستانی به نفت تبدیل خواهند شد هر لیتر از سخت اوتوموبیل های ما هر تک پلاستیک موجود در زمین رنگ روی دیوار ها فرش زیر پاها حتی سابونی که برای شستن خودمان استفاده می کنیم تقریبا همه این ها به همین ترتیب به وجود آمده 180 ملیون سال پیش به غرب می رویم صفحات امریکای شمالی هنوز در حال دور شدن از صفحات اروپا و آسیا است این فرایند به کندی اتفاق می افتد حدود دو نیم سانتیمت تیه هر سال یعنی با همون سرعت رشد ناخونای ما در زمان جلوتر می رویم به حالا شاهد ایجاد اوگیانوسی تازه در پاین و شکل گیری قاره های جدید هستیم منترال از مراکش و نیویورک از آفریقای قربی فاصله می گیرد دنیا به همون شکلی که امروز می شناسیم در حال شکل گیریست شکاف بین دقاره پر شده و اوگیانوسی بزرگ پدید می آید اوگیانوس اطلاس و اینجا در وسط یک آتش فشان پیش از این شاهد جا به جایی صفحات زمین بوده این می دانیم که علت بقوع این رخداد جریان های موجود در زیر پوستگ زمین است این فرایند اکنون هم آن پایین در جریان است کف دریا به طور کامل به دونیم تقسیم شده و باعث بالا آمدن برامدگی های کوهستانی و آتش بشانی شده. ارتفاع اینها از هیمالیا و طولشان از کوهستان های راکی بیشتر است. آب در اینجا بسیار داغ است. گدازه ها مسیر خود را از اماق زمین باز می کنند، با سردتر شدن گدازه ها مجموعه ای تازه از کوهستان های آتش فشانی و کف جدید در اقیانوس ایجاد می شود این همان عامل جدا شدن پانجیا و دگرگونی آرایش دنیا است همین فعالیت زمین شناختی است که زمین را به سیاره ای بیقرار، خلاق و منحصر به فرد تبدیل کرده و هر بار که سیاره شرایط خود را تغییر می دهد جانداران ساکن هم باید خود را با شرایط همه هنگ کرده و تکامل پیدا کند جاندارانی مثل این این ها ماهی خزندسان هستند نیاکان خزنده ی آنها ساکن خشکی بودند اما آنها هم با تغییرات سیاره تغییر کردند باله در آوردند و اوگیانوس اطلس تازه ایجاد شده را سکونتگاه خود قرار دادند این یکی ششم طول دارد سریع است و با سرعتی در حدود 40 کلومت در ساعت حرکت می کند. این ماهی ها سریع ترین جاندار ساکن اوگیانوس و بهینه ترین شکارچی بوده و به مدت پنجاه میلیون سال بر اوگیانوس های زمین حکرانی می کرده است. اما حالا رقیبی تازه برای تاج و تختش پیدا شده. یک پلای سوف موجودی با درازی بیشتر از یک اوتوبوس و وزنی بیشتر از یک کامیون. آرواره های این جانور بسیار بزرگ بوده و از قدرتی بیشتر از هشت برابر یک کوسگ بزرگ سفید و دندانهایی به طول سی سانتیمیت برخوردار است زمین و جانداران ساکن آن به شدت تغییر کردند اینجا که زمانی خشکی بود حالا به اوگیانوس اطلس تبدیل شده است همینجا بود که شاهد چرای اموسور و کمین دایلافوسور ها برای شکار بودیم. گرچه دنیا دایناسور ها تغییر کرده اما آنها به همان قدرسمندی گذشته هستند. این جانداران شکست نپذیر به نظر میرسند. دایناسور ها یکی از معفقترین گونه های سیاره هستند آنها از فوران های آتش فشانی، زلزله ها و دونیم شدن قاره ها جان بدر بردند دایناسور ها 165 میلیون سال روی زمین باقی ماندند اما هیچ چیز شکست نپذیر نیست این یک پساندار شبیه به موش است که حاصل تکامل تعداد محدود پسانداران باقی مانده پس از انقراز گسترده روخ داده در 185 ملیون سال پیش این جاندار همچنین چکار مناسبی برای داینوسورها به شمار می رود؟ به همین دلیل است که بیشتر پستانداران روی درختان یا زیر زمین زندگی کرده و شبها بیرون می آیند پستانداران تحدیدی برای دایناسور ها نیستند هیچ موجودی روی زمین نمی تواند برتری آنها را به چالش بکشد هیچ چیز روی زمین این یک تکه سنگ فضایی است، یک سنگ بزرگ. این سایه یک قطری در حدود 10 کیلومتر دارد، یعنی ابعادی بزرگتر از کوه اورست. با با سرعت 70000 کیلومتر در ساعت مستقیم به سمت زمین در حرکت است. مسیر حرکت سیارک به سمت خلیج مکزیک و نقطه این نزدیک به شبه جزیره یوکاتان است. سرعت حرکتش به قدری بالاست که تنها یک لحظه پلک زدن جهت از دست دادن لحظه برخورد کافی است مگر این که زمان را کنتر کنیم همین کسری از ثانیه دنیا را برای همیشه دگرگون خواهد کرد. در لحظه برخورد، لبه پشتی سیاره هنوز حدود 11 هزار متر ارتفاع دارد. یعنی چیزی معادل ارتفاع پروازی هواپیما های مسافر برید. نیروی برخورد سیارک به قدری بالاست که هر چیزی را که در مسیرش قرار گرفته بود نابود می کند و حتی خودش هم بلا فاصله تبخیر می شود انرژی آزاد شده در نتیجه این برخورد معادل چندین میلیون سلاح هسته ایست هیچ نقطه ای از این وقت خورد در امان نیست حتی این بالا برخی از این تخت سنگ ها عبادی به اندازه یک بلو که کامل شهری دارند موج انفجار مثل گلوله های انفجاری حاصل از انفجار یک بوم از نقطه برخورد پخش می شود. چند دقیقه پس از برخورد هزاران کلومتر آنسو تر از نقطه برخورد سیارک زمین از همه طرف مورد حمله قرار گرفته بارش تخت سنگ ها آغاز شده زمین می لرزد و سنامی ها سواهل را ویران می کنند اما حمله تازه آغاز شده توده های سنگ های گداخته و قبار گسترش پیدا می کند و سیاره را دربر می گیرد فضای آسمان حکم یک لامپ خرشیدی بزرگ را پیدا کرده دمای زمین به 275 درجه می رسد و گیاهان خود به خود آتش می گیرند حتی ماه ها پس از برخورد دود و خاک سر هنوز هم مسیر پرسه های خرشید را مستود کرده با کاهش نور خرشید گیاهان از بین می روند و حیواناتی که از آنها تغذیه می کنند هم از گرستنگی می میرند. با شرایط موجود به سختی می توان آیاندهی برای بقای موجودات زنده تصور کرد. شست و پنج میلیون سال پیش موج انفجار، ریزش سنگ ها و آتش سوزی دایناسور ها را از بین برده. دوران حکرانی 165 میلیون سالی داینوسور ها به پایان رسیده اما انقراز داینوسور ها فرصتی برای رشد گونه ای دیگر است پستانداران آنها با زندگی در زیر زمین از گرما و آتش در امان بودند و با عادت به تغذیه از همه چیز بقایی خود را تزمین کردند برخلاف انتظار این جانداران وارث تاج و تخت دایناسور ها هستند با پایان یک داستان با پایان یک داستان داستانی دیگر آغاز می شود با از بینرفتن دایناسور ها فرصت رشد نیاکان ما هم فراهم می شود مدت ها از زمان انقراض دایناسور ها سپری شده. سیار آرام هست. در این دنیا تازه نیاکان پساندار ما در حال تکامل هستند، این دریاچه که 47 ملیون سال پیش در آلمان امروز واقع شده می تواند محلی ایدئال برای مشاهده آنها باشد این موجود شبیه به پستاندارانی که پیش از این دیدیم نیست این موجود شبیه به پستاندارانی که پیش از این دیدیم نیست مغز و چشمان او بزرگتر هستند نامش در رنیوس محسیلا یا ایدا است هیچ شباهتی به ما ندارد اما فسیل های کشف شده در دوران ما نشان می‌دهد که امکان تکامل این جانوران به میمون ها و در نهایت انسان ها وجود دارد اکنون در مسیر 47 میلیون سال به اقعب بازگشته و جانداری را میبینیم که ممکن است یکی از اولین نیاکان ما بوده است. دریاچه روی دهانه آتش فشانی واقع شده که گازهای خطرناکی آزاد می کند. حالا دریاچه‌ای که باعث مرگش شده بدن او را در اعماق توهی از اکسیژن خود حفظ خواهد کرد. یک روز در آینده زمانی که خبری از آب در منطقه نبوده و ایدا در سنگ فسیل شده باشد، ما نوادگانش او را پیدا خواهیم کرد و از طریق این پساندار نخسینسان به شروع داستان پیدایش خود، داستان پیدایش بشر خواهیم رسید. اکنون به درک چگونگی ارتباط تمام چیزهایی که دیده ایم از باکتری های اوگیانوسی گرفته تا ماهی راه رونده و جوندگان زیر زمین به خود ما نزدیکتر شده ایم. حالا اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی پیدایش سیاره ما داریم. 47 ملیون سال پیش اتموسفر تقریبا شبیه به دنیا خود ما است. دمای هوا 24 درجه است. و طول روزها تنها کمی کمتر از 24 ساعت است. زمینی که در حال حاضر می‌بینیم تقریباً مشابه سیار ایست که به عنوان خانه می‌شناسیم. البته تقریباً صفحات زمین دوباره در حال جا به جایی هستند و قاره ها را هم با خود همراه می کنند. هند به سمت شمال و آسیا حرکت می کند. صفحات هند و آسیا درگیر نبردی بزرگ می شود. هیچ یک از آنها توانایی برنده شدن را ندارد بنابراین هر دو به یک دیگر می پیوندند فضایی که پیش از این آبهای اقیانوسی بود حالا تبدیل به دو نیم هزار کلومتر خشکی شده کوهستانی بزرگ سربر می آورد هزار و پاندسد متر چهار هزار و پاندسد متر و حالا بیش از هشت هزار متر اینجا هیمالی هست و این هم بلندترین کوه دنیا ایورست قله این کوه ارتفاعی معادل جریان جتی زمین و ارتفاع پروازی هواپیما های مسافر بری دارد. روی قله ها پس از آب شدن به رودهای بزرگ سرازیر می شود رودهای گنگ، سند، یانگ سته و رود زرد هیمالیا نقش یک برژ آبی بزرگ را دارد این رودها بعدها آب مورد نیاز تقریبا نیمی از جمعیت دنیا را تمنی خواهند یرد بیست ملیون سال پیش این سیاره ماست با همه قاره ها و همه اوگیانوس ها به همان ترتیبی که می شناسیم البته هنوز چیزی کم است ما نسل بشر برای تکمول انسان ها لازم از چیزی جای آن پایین تغییر کند در امتداد ساحل شرقی آفریقا، بین صفحات سازندگی پوستگ زمین شکافی بزرگ ایجاد می شود. این شکاف تا حدود 6 هزار کلومتر امتداد پیدا می کند. در امتداد لبه هایش کوهستان هایی سر برمی آورد. در امتداد لبه هایش کوهستان هایی سر برمی آورد. انجا را ببینید این موجود به میمون شباهت دارد نه به انسان این جانور می تواند تا ابد روی همین درخت ها باقی بماند اما دنیا در حال تغییر است کوهستان های در حال رشد مثل یک دیوار عمل کرده مسیر جابجایی رطوبت اقیانوس هند به سمت خشکی را مسدود می کنند هوا گرمتر و خوشکتر می شود جنگل های بارانی انبو به دشت های خوشک تبدیل می شود شرایط آب و هوایی تازه گرمتر سکونتگاه طبیعی این جانداران را از بین می برد و آنها را برای پیدا کردن قضا ناچار به جستجو در دشت می کند ناچار به کنار گذاشتن کشیدن انگشتان روی زمین همچون میمون ها و ایستادن و راه رفتن روی دو پا این مهمترین گام در تاریخ انسان است شکل گیری این کوهستان ها در امتداد ساحل شرقی آفریقا ممکن است علت راه رفتن ما روی دو پا باشد شگفت انگیز به نظر می رسد جا به جایی تصادفی دو صفحه ممکن است آمل شروع زنجیری از رویدات ها بوده باشد که به پیدایش نخستین انسان ها منتحی خواهد شد. یک مرد و یک فرزند این سحنه به آنچه که امروز در دنیا خودمان میبینیم شباحت دارد اما در واقع مربوط به یک و نیم میلیون سال پیش است این ها گونه های اولیه از انسان ها موسوم به انسان راستقامت هاستند و آنچه میبینید اولین جاپاهای شبیه به ماست تمدنهای گذشته و حال همه ی افرادی که تا به حال پا به دنیا گذاشتند بزرگترین اختراعات، درخشانترین ایده ها، تاریخ بشر با همه پیچیدگی ها و شکوهش همینجا و همکنون آغاز می شود. شرایط آبا هوایی دوباره تغییر می کند هفتاد هزار سال پیش ستوه دریا پایین می آید شکاف بین آفریقا و عربستان کوچکتر شده و به تنها سیزده کلومت می رسد دریای سرخ به اندازه کافی باریک و کم اونخ شده و امکان عبور این گروه کوچک به سمت آفریقا فراهم می شود آنها گروهی دیگر و جدیدتر از انسانها به نام انسان های خیرتمند هستند این گروه موفق به عبور می شوند دانشمندان معتقدند همه مرد ها، زن ها و کودکان بیرون از آفریقا نوادگان همین گروه در حدود دیویس نفره هستند تعداد نیاکان ما در گذر زمان بیشتر شده و در سر تا سر دنیا پخش می شوند، در هند، در آسیا و در اروپا. اما همزمان با حرکت انسانها به سمت شمال، دیواره ای بزرگ از یخ به سمت جنوب در حرکت است، اوروپا چهل هزار سال پیش نیاکان ما موسوم به انسان های خیر از من در حال رسیدن به من باید اوج تابستان باشد اما گیاهان و رودخانه ها یخ زدند تغییرات طبیعی حرکت زمین سطح دیوکسید کربون و جریان آبهای گرم در سر تا سر سیاره در کنار هم باعث کاهش دمای زمین شده زمین و ساکنانش وارد اصر یخبندان می شوند توده های یخی به ارتفاع آسمان خراش ها روزانه به میزان سی سانتیمتر نیمکوره شمالی را دربر می گیرند آنها با حرکت آرام و قدرتمند خود محیط را تحت تأثیر قرار داده و توده های یخی بزرگی را به وجود می آورند شرایط سیاره برای همیشه دگرگون خواهد شد تا به 20 هزار سال پیش رسید این و پیدایش یخ‌ها متوقف شده بخش اعظم نیمکره شمالی با صفحات یخی با حداکثر ضخامت 2.5 کیلومتر پوشیده شده با گرفتار شدن تریلیون‌ها گالن آب در قالب یخ سطح دریا پایین می‌آید 20 هزار سال پیش تچی از خشکی روی اقیانوس بین سیبری و آلاسکا به وجود می آید. پلی بین دو قاره بزرگ. دروازه‌ای که انسان‌ها را از آسیا به دنیای جدید به آمریکا خواهد رساند. این آخرین قاره بزرگی است که مملو از جمعیت خواهد شد. آخرین مهاجرت بزرگ انسانی و جایی در این پایین اولین امریکایی ها حضور دارند اکنون چهارده هزار سال پیش تغییراتی که باعث بروز عصر یخ بندان شد به صورت عکس رخ می دهد با آف شدن یخ ها یک نیمکوره شمالی بسیار متفاوت پدیدار می شود توده های یخ باعث ایجاد فرو رفتگی هایی بزرگ می شدند که حالا با آب پر شده و به دریاشه های بزرگ امریکای شمالی تبدیل می شدند. شش هزار سال پیش، توده های یخ به قطبها به شمالگان و جنوبگان عقب نشینی می کند، پس از سی سفری چهار و نیم میلیارد ساله بلاخره به مقصد رسیده ایم به خانه این دنیای ما و دوران ماست حالا برای اولین بار میتوانیم قطعات پازل داستان شگفت انگیز سیاره ما را کناره هم قرار داده و دریابیم هرانچه که امروز پیرامون خود میبینیم چطور و چگونه به اینجا رسیده از آسمانهای بالای سرمان تا آب انصار کلیدی حیات زمین زیر پای مان و در نهایت زندگی نتیجه خارق العاده زنجیره ای تصادفی از فجایه و اتفاقات هر پیروزی به هر حادثه گامی در مسیر رسیدن به این نقطه است. به تک تک ما، به زمان حاضر. اما داستان زمین اینجا به پایان نمی‌رسد. رویدادهای فراوانی رخ رو داده، اما هنوز هم راه زیادی در پیش است. زمین حد اقرد چهار و نیم میلیارد سال دیگر باقی خواهد بود همه ی آنچته ی سفر خود دیده این تنها نیمی از داستان است تصور کنید چه شگفتی ها، چه وحشت ها و چه موجودات عجیب دیگری پیش روی سیاره بیقرار و خلاق ما خواهند بود فصل بعدی داستان زمین هنوز نوشته نشد